آزادی کفر و شرک است آزادی کفر و شرک است در اجتماعی امکان پیدایش و رشد آزادی هست که اعتقاد به شرک و کفر داشته باشند اندکی درباره این مسئله می در فرهنگ ایران در این راستا بررسی کنیم با حافظ و عطار و مولوی و فردوسی اگر به دیده جرب بنگریم می‌بینیم که احیار جنبش بازگشت به بت‌پرستی در شکلی نوین آغاز شد. همچنین این جنبش ادامه داشت تا در دوره مشروطیت بعد سیاسی هم پیدا کرد میرزا حسن شیرازی در واقعه تنباکو پیش از وقوع مشروطیت در ایران متوجه این نکته شده است که اون اسلام و آخوندها صدها ساخته بودن و در ذهن مردم ایران تبدیل به محال کرده بودن یک چیزی محال کرده بودن به رقم صده ها تحمیق پذیر شد در تلگراف دویوم به ناسدین شاه می که با دادن این امتیاز در اثر آمده شده ایرانی ها با خارجی ها عقاید ایرانیان فاسد می و اونگاه او از این نتیجه میگیرد که خلق ایران به کفر قدیم باز میگردد این را در تاریخ بیداری ایرانی ها میتوانید ببینید او نتیجه نمیگیرد که در این رابطه ایرانی ها با خارجی ها خلق ایران پیروان کان گل و مارکس و هایدگر و پوست و یا پوزیتیوی، پوزیتیویسم علمی می شود؟ نه اون این نتیجه را او او کاملا به طور قریزی متوجه نکته باریکی می شود و میگوید خلق ایران به کفر قدیم باز می گرده. این کفر قدیم چیست این همون سیمور. هست. سیمور همیشه کفر است. در غزلیات حافظ و مولوی و اتار و همچنین در شاهنامه اگر دقیق دقت بشود آنها با گستاخی بینظیر به کفر قدیم و شرک و سنم پرستی در گستره ادبیات و ارفان بازگشتند و راه را برای آزادی و کسرت راه‌های جستجوی حقیقت گشودند چون گوهر آزادی شرک و است. گوهر آزادی شرک و کپرست شما در هیچ جایی نمیتوانید آزادی ایجاد بکنید بدون اینی که شکر شرک و کفر در آنجا باشه و عصر روشنگری را در اروپا عصر بازگشت و کفر میخوانم مشروطیت چون که این پژوهشگران نیمه پجوه و نیمه پجوهشگر میپندارن تنها برداشتن رونوشت تو تقلید از قرب نبوده غرب، اون اونچه از غرب آمد یک تلنگری بوده است که این بنمایهٔ موجود در های فرهنگ ایران و روانی را برانگیخته است کوتاهی این آنان که خود را روشن فکر و روشنگر میخوانند این است که نتوانستند و نمیتوانند این کفر و شکر را از ادبیات و عرفان به گستره تفکرات اجتماعی و سیاسی بکشانند. این نیاز به ابتکار دارد این نیاز به تفکر دارد مشروطیت شکست خورد چون از گنج آزادی در فرهنگ ایران از سراندیشه فراسوی کفر و دین که اسلامی بودن یا زردشتی بودن فرهنگ ایران را رد و ترد میکند بهرهای نبود. از این اندیشه که اتار گفته بود که مردمان میتوانند در جستجوی شاه یا خدا خودشان و هم شاه یا خدا بشوند این یه است که اندیشه ای است که در منطقه تر به چشم میخورد برجسته است. کسی که این را این نکته را متوجه نمی شود به چه انوانی نام خود را روشنگر و روشن فکر مینم میگذارد. می می می اینها کورند فرهنگ ایران را نمی بینند اینها میخواهند لغمه گرفته در دهان اینها بگذارند. فرهنگ ایران که جان و خرد هر انسانی را مقدس میدانند. فرهنگی فراسوی همه ایمان هاست چرا برای خاطر اینی که جان و خرد انسان در فرهنگ ایران بر هر ایمانی اولویت دارد چه ایمان به محمد باشد چه ایمان به زردوشت باشد چه ایمان به مارکس باشد فرهنگ ایران جان و خرد انسان را که زاده از جان است زاده از اندیشیدن راجع به بهزیستی هست در فرهنگ ایران زاده مستقیم از جان است. کارش اندیشیدن به بهزیستی همه مردمان بدون تبلیز این را در فرهنگ ایران خرد میگوید با عقل با عقل اسلامی و با عقلی که از قرب آمد هیچ رابطه ندارد اینها را نباید با هم مخلوط کرد چنین جان و خردی فراسوی این ایمانی که ایمان دیگری را کفر میداند و هم فراسوی اون ایمان است که این ایمان را کفر میداند مؤمنان به ادیان و به مظاهب همه همدیگر را کافر میدانند فرهنگ ایران چنین گونه کفر است یعنی چی؟ یعنی جان را و خرد را فراچوی همه این ایمان ها می داند. این اولویت زیستن زندگی کردن دارد هر ایمانی شما یا او می داشته باشد این مسئله فرعی و حاشعی می شود اصل اندیشید یعنی به زندگی است. فرهنگ ایران کفر برای همه ایمان ها همه اینا من ها. چه به محمد چه به زردو چه چنین فرهنگی را کفر می دان. این همین سیمورم فرهنگ ایران پوست هر ایمانی را از هم می شه کافر. چون در هیچ گونه ایمانی نمی گنجد کافر و مؤمن مگو فاسق و محسن مجو جمله خراب تو بر همه افزون بخوان کیست که مست تو نیست کیست که مست تو نیست و پرست تو نیست مهره دست تو نیست دست کرم برفشون چل, چل مقالاتی که من در غزلیات مولوی بلخی نوشتم و تا چهار جل شده است نشان میدهد که رد پای فرهنگ سیمرغی که دوره خوف رو شرک ایران است در قذلیات او به خوبی منده است و در قذلیات مولوی بلخی میتوان فرهنگ سی مرغی را بازسازی کرد من در آثارم کوکیدم که از قزلیات مولوی از ردپاهایی بسیار زیادی که در قزلیات مولوی از فرهنگ سی باقی مانده است بیرون بیاورم و اونها رو بازتازی کنم فراموش نباید کرد که اون چه در اسلام دجال نامیده می شود چیزی غیر از دجال نیست دوت آل آل همون سیمور بود و این را پیش از اینی که اسلام بیاید زردوشتی ها او را تجاوزگر و پرخاشگر و خونخار کرده بودن این تهمت را به او زده بود در صورتی که خدای مهر بود خدای مهر را بیرون انداخته بودن و میتراز که خدای قربانی خونی چیزی شبیه الله بود آورده بودن و اسم او را گذاشته بودن خدای مهر ببینید چه فاجاهای در پرهنگ ایران روی داده است. ولی این دجال کی هست همون سی مرغ یا همون انغاز که در ادبیات ما چهره درخشنده و دل و تابانش نگاهداری شده است. این ارتا ارتا پرورد ارتا خوشت اینا اسفایی بوده از ارتا خوشت اسمی بوده است که مردم ایران به ارتا می دادن. بعدش زردوش اسمش را عوض کرده است گفته از ارتا و هیشت چرا؟ برای خاطر اینی که ارتای خوشه ارتای دارای زهدان خوش و زهدان یک معنا دارد. ارتایی که تخته و تخم است این خب این به درد زرتشت می این است که او این خدا را تغیر نام داده است بلکه با چهرهی مطلوب خودش او را در آموزه در چارچوبی آموزه خودش بپذیرد و ما عادت کردیم امروز او را ارتا اردی بهش مینامیم در صورتی که اهل پارس همبتانان هاپز او را ارتها خوش مینامیدند ارت های خوشه این ار این خوچه خیلی معنای مهم دارد ارتها شما هر روز که نان میخورید هیچ فکر هستید که خدا را میخورید آرد آرت این در اوستا شده از عاشق ع آرد دانه خوشه تبدیل می شود به دانه خوش خدا خوشه انتونه این دانه ها را که کوبی دید می شود از سر اردون این همان فکر خوشه انگور است که بارها مولوی می گوید وقتی بفشارید شیره می شود اون شیره کی است اون جانان اون سیمور است. این این همون کفری است که آخونت ها همیشه از راستاخیش است راستاخیش واهمه داشتن و دارن و خواهند داشت این خدایی که مجموعه انسانهاش شیره آنها همه خداست این همون که افسانه ساخته شو همون دجالی است که اصل کفر را میده میشواد ولی در جان هر انسانی آشیانه دارد و, فبا... و فقط باید جوالی را که به زور به جان پوشیده اند بدرانیم تا این را پیدا کنیم گفتم که ما را هنگامه بنما گفت اینکم ما تو در جوالی گفتم که ما را هنگامه بنما گفت اینکم ما تو در جوالی بدران جوالو سر را برون کن تا خود ببینی کندر وسالی تو همیشه در وسال با هما با سیمر هستی اندر ره جان پا را جان زیرا همایی با پر و بالی ببینید این هما این سیمور را افسانه میکنند یعنی چی؟ یعنی از ما اسارت ما رو میگیرند میگویند این واقعیت ندارد این منکر اصالت انسان میشوند. اونها اخ، را افسانه نمیکنند اونها با این هیله اصالت ما را اصالت گیتی را از ما میگیرند وقتی ما لهله میزنیم برای خاطرنینه که از خارج تئوری وارد کنیم که به ما حقوق بشر یاد بدن ببینید به کجا رسیده است از. از ما همه چیز را گرفتن ما را بیچاره و گدا کردند. باز هم هنوز ول نمی کنن. هنوز در نعره می که سیمرغ و هما افسانه، است و هما دو تا مرغ مختلفند. سر بحث جوجه کباب و مرغ می شود آقا با هما و با سیمرغ که افسانه ساختن اصالت منو تو را گرفتن اصالت گیتی را گرفتن اصالت زندگی در گیتی را گرفتن در پژوهش‌های من نشان می دهم که اندیشه های بنیادی مولوی در قذلیاتش تحت تأثیر پلوتین یا تحت تأثیر محید دین عربی به وجود, به وجود نیامده است بلکه که در زیر نفوذ مستقیم فرهنگ سیمرغی در زادگاهش بلخ به وجود آمده است در کتاب جداگانه من نشان خواهم داد که فوج فرهنگ سیموری از راه پدرش با دین ولد بر او به او رسیده است در این بررسیها ها فرهنگ سیمرغی که زردوشتیه ها به شدت آن را تحریب کردن و مزک ساختن و کوبیدن و هنوز هم میکوبند و هنوز هم زشت میکنند در جلد سیاتش گترده میشوند